گمار کردندی دلیر سلیم گوگراني عزیز و خوشویست سلطان لیبی و شوتن شد خوشحالیم لب بشی هشت و سی خود نویکتی بیچیشتی مژودی هزاری مکرانی هاتی فرمون لگال بن تجار بس رهات کنی، لگل مم حیمنی شاعر داده یار تو. دلیت حیمن ددانه کنی دسکرد دا بون. دیگود ددانم زر مابون. دکتور ابریشمی لسابلاغ گوتویا شاعری وقتو تو باقیمت حیفه ددانی خراب بن. کی شایو ددانی بود روس کردم. بالام چون ددانيک همیشه لګرفنیدبون د مینن خواردن د دمي و پاش نان خواردن به بشوشتن د هیڅ نوګی فانیو لخصه ده هر پلته ده هاد رژيکستان هواي اغايتي قدیم هلي ګرد د ګل چون راو زور ګرابون کويش کین دس پاش نه شات نه لپر همن د دا دانم لکیو ب جای ماون برون برون بومبیا نو یم شوتمن کاکا ب فرچوتو او هم دنیا چون نو وتی نه هر ده به سلیمان بچلیان بیگاری اوتم مام هیمن توبلی لا جورا وبجد نه یشتبه هات جوابوتی ا ا شیتم یلا سلیمان توب چوکیو یکیش بچته قلاله کونه دسته ددان یکم لای حاجی هیا بونبینی بل هی بابچن خوم چو مجور لبن سنیر دابون هینا مو حرام کرد ورنوا ورنوا ددان دوزرا یوا شویک لسرج راکشابون مام هیمن او چند پیش مرگل سربان نفسته بون دیتم ګرآګر دې ګبرز ب وو کوژایو پر سیم او چیا ګوت یان هیڅ نه بوو بایاني زنیم همن جغاره بدسته وخویلکوتو لفه اگریګرتو مام علي کوژندو یتیو پیوسته امش له همنو بجرمو کاتي حوالجر گین یک شوانه حبی کی خوی د خورد کدمه کی اگر شوانه نه خو خوی نه کوي ډاکټر وتی به حبی خوهن همن لاواسته دبه بریرمانده حبی کی ویتامین برنج حبا فاليو مکی سالگ ویتامینم دایو گتم حبیخوا زور باش خویلیه دکوتو پسندیبو سالو دوا گتم کاکا تو سالگ کترکی حبیخوت کرد دوا خواه شکر ل خلاص بوي چوبو خویل دکتور تو را کرد هزار فیلتن لی کردم گرایوا سر حبا وليوما کي خوي همين وستیبچه ت بغداد قاسم لوها ولاني برزني فرموي ازاد باجي بچه بلا امده ترسم دور لئه و خوشی لیرانه بوری هر وقت بیتوا یما حاضرین بو خدمتی. پاری که بو نردو هیمن بجه هیشتین اوش شیعوی باسه جاری کمن لبی خوالانه و چو بو مبغدا هیمن لجیمن من بسر بنکر راده گیشت روژه کارگران بو بو شرین سفر گونی ملا سید رحمانی باده بو دلی بو رابوا شکایت گی بو سیاسی نرد بوین هیمن چوبو. بو تبوین دیمه مستا، خطایی که بوا، هجار و تبوی؟ کاکا تا تابلوی چپ لا نبنو، لینه نو سن خساس خانه منقسه ناکم، لو با قره یراو پیاو پیاو دا خسینه، لو چن ساله پیش مرگیدا، به هزاران عاش دوستم بو پیدا بو بو، که به زور بیان زور دلخوش بو، بلان بتایبتی دگل، عبدالخالقو فرنسوا حریری، که معلمه که حریر و مسیحی بو، لو سردمانه دا بسرگلاله را دگ زور لا شرد محترم بو زیاد لا خالک دی علاقم د ګلین هبو په تلغه بیان دل دوست بوین فرانسوا بو حوالجر لا بارزاندیتو بوین آشنا لا منطقه بالاکیش پیګیشت بوینوه هر کار یک منو عبد الخالق پیمن وایه قتل لا پیکنانی درېغینه د کړت کاک عبد الخالق لا ملای ولزه دوکټی بی فتوای شرعی توشي مساله وین دربارې خواردن له شرع ده دلې اگر مسلمان یک برسیبه هیچ چی دست نکوي بشر اتوانی مسیحی یک خو یان کرو کچو جنیشی بخوا زور قیتری و سیدی ته ده فتواکه من به فرانسوا نرد وتمن هر چی دعوت لیدکین فورن نې کړیونې نیلی شرط به بت خوینو اوش فتواکه حلاله زورجر عبدالخالق الخالق لیسکی بالا برزی انرد کاک فرانسوا مریش گوشت میوه چی چیوچیننری بیستو مقلویش بوی گوشت دپې فتوای کتیب حلالو زلالو خود آمدک لا راستیدا فرانسو زور به درد و مرگ مانو بو هر چی له دستی یاری ددان من دریغینه کړ روز یک رمضان بو مامهیه من رو برو بالکاتی دې نه نو ماشندا جغاری کید دګی سینه هر چی د ماشنه رانندش دگل بګژیدادین پیدلن آی پیرامیر پدلا سلوی لا خدا ناترسیو با رمضان تیار رجود اشکنی. آیا من دلیه بوچی کاکا؟ یهو پی تنوع من کیم؟ آنیش دلیه چوزانین پی رمیردیو با رجونیت. هی من دلیه کاکا من فلم باو کی فرانسو حریریم کرم حاکم لجالا لوده تمش سریدم. آوانیش دلیه ای ما مدبیر من بخشی نمان زنی. هی من دیگود آجر جغرایان بوده دیسند مو دندامی آیا من بوده نام کنواک حاکمی کرم بزنیو لیان تور به فرانسو نقلقه بست بوغو بوغو مايه پیکنينو استاش هرداله همني باوكم. هشتا هرلا سوربان بومونهات بوينه بخوالان جاريك نامي احمد توفیقم بوهات که او چند ساله دور لکارو باري سياسيو دور لسنوري اران راي بواردوا. ایستاش هیچ همیدیکنیه که بارزانی رگه بدا کاریک لدیو ایران بکینو هر دیو دسالاتی سواک ساواک من تونتر تر دبه امجارلم سنور دور دستاش هیچ حرمتیک من نماغو با انقصد کاریوه لوکیلانی شورش دبینم که دیارا حزل چارم نکن نخوشیشم پشت ایشمه اگر بارزانی دلی نرانجه دمویبت مخاریج هم بو مداوا هم بلکو بتوانم کاریک بو کردی ایران کم. څکه کم ګ핸 دو زهري شمل لاګيري لکړد برزني وتي مصلحتي شور شکمان وي وی احمد لم نزي كان من د سپيرم کبدلي او بجولينو اگر بش خارج موافقمو چی دی بویدکم پښمویک ل جواب نامه کم دا پښمرګي که احمد حت سوربانو بم نیګوت کک احمد قراري مانگ برواری منګ برواري چولکاو بچته بغداده چونکه توا وګیناتو جیاني لا تنگ نه دای اگر دکریه کاریک و چاریک بکر با حالا دوان د حاجی امران با پله گوتم دموی ملان مصطفى ببینم گوتیان کسی که للایا، راوستا گوتم پیم خوشت هر استا ببینم ایتر چون با تنیا دانشتینو باسی احمدم کرد که حیفه زور لرگی کردو و طیبتی شرشی تو دا زحمتی کشاوا استا بچه تلای دجمنانی کوردستان تاثری منک حوت راجمه اوا و بانر دل فرموی تو درنگ خبرزانی و احمد روی و بغداد لدست درچوا تلگرافی که بیسیمی نشاندام که اسعد بوی نرد بو دوائی که دولت اگر بس من کرد چاو بو چاونور حکمی ذاتی بوین روشیک لبغدا توشی احمد حتم که ل شورش رویش تو و دگل باسی بو تاشنا بلام هرگیز خیانت ببارزانی و کردستان بدلی او داران بردو و راشنا بوری اتر خبرم خبرم احمد برا لشیو د 22 د گل دستي قاسملو نيواني خوشنيو شرع دندوکی یكتر دکن وتيان لپاش کو دتای سر گزار زور کردی دوستي دولت کو جوړاون دگل 82 به تومتی اوکه اگاین لبزوت نوې ناظم گزار بوو د جن جن کړدو برګوله دراون 29 ک احمد توفیق ګی افسری چې خبری دامه کل زندانی قصر زهوره پاش چنجاره ک خبری گیرتنی دامه ګوتی بردو یانه زندانی ابو غریبو اگم لیبر راو لکی ول در بند بوم دو پیش مرگال لولای من وقсе آنکرد یکی آنگو تی یا بگریم مل زندانی ابو غرب بوم سلول کم دگل سلول لکید ک کلنه کی همو پیاوه کی تدا حابس کرمو رنجانه یک تیمان لوا کلنه و عدوان دیگو دنیا و محمد توفیق خبرم لدرع و کدگل کارداری سفرت آمریکا لا سفرت سوئیس خسام کردو و ک بم هل بست همو روش دیان برده دری اشکانجه انده کردو با کلاله دیانه نو نو سلوله که جالیک بردهانو نهاتو و ادیاره و فخیر اشیان کشتوه زور بو خبرانه دلم تنگ بو بو بلام دیتم مسعود برزانی و ادریس برزانی قرانی ملا مصطفیش بو خبری نمانی احمد زور دلتنگن واملی معلوم بو که لبغداش و علاقه دقال مرکزی فرمانده برزانی هر نبسند و تو بخبر بو نردن یاریده ش باب روامن با سی هستیان بوکردو بهانی کی دیکین بو تا شیو ول نویان بردوا اتر خوادی زانی هر چی یک به من برادر خیلی زوخوش وستو زور عزاو بکارم ل دستو یک لوانی که احمد چوبونه بغدا ملا سید رشید بو که خلکی بوبکتانی لای سقز بو که اوکی زور پاکو کردی چاکو زوریش بدستو تفنگی خوی آزا. لبغدا لچینی دوهمی خانوکی مندجیه. دا پیش دا هردم ناسی لسونیو زور شوی نیتر دیت بون. لشارک که دولت لسروچاوک را نوبانگی آزایاتی در کرد. او بینکا پیکا و المالک دابوین همیشه زور با احترام و باس احمد توفیقی دا کردو با کردیکی نمونهی دا زانی. ملا سید راشید پاش کانی شعرش حتا سقز. بدارتاشی بردچو لانقلاب اسلامی دا لدور دیواندره دا گل کون آغاین تیگیره و بدوامین فیشک خوی کشت. وګباشکرا بعسی که بو دوم جار حکم انګرته و دست زوري نبرد له مانج نوې سال 1968 شریان بسرده نوا او شره تا سره تای سال 1917 هربرد بود یاری دی چکو کلوپلمن زور لرهګی ایرانو بوده دولت عراق الروج لگل روج لکزیو کنهفتیده ده صدام حسین اعلان کرد که خود مختاریده ده بکر خوهایات لای برزانی لنو پردان دایان شلو شالو پیکاتن زور نرازیه بلام گوه با قصی او ندره و دسکره با کوبنو و تویش پیکاتن که لماوی چوار سال دا خود مختاری به اکجاری سقام گیر ببی چوار وزیر من لکابینه دا جکره نوا نوری شاویز وزیری ریگوبان سامی محمود وزیری کارو باری شیمل احسان شرزاد وزیری بلدیات صالح یوسفی وزیری مشاور و مدیری راجنامو چپمانی روش یک لا چومان ملا مصطفى دگل ایدریسی کوری، لی مدرسی که ام برای چوم دانیشت بون، بان کردم، گوتی، هر وخلکو لی بغداو شهران دا امزرین، دا مانوی توش کاریکت بدلی خود با پیدا بی، وتم، من چند سال زور به ازادی جیاوم، گلیم لی جیان نیا، هزدکم هر دگل ایوه لی چیاو چول بم، گوتی، نه، دا بی کاکسامی ککسامی ببینی، رام سپردو کاریکت ببکا، که بدالی خود به هت ماو برده روز یک با ماشینی کهکس می داشو ماو ماله. لریگا گویی من حولم بتو داده. بالام بعثی نات نسن. پیوست کاری که وابق وقت شاعری که محترم مثلا وقت جواهری بتنسن. هربپلا بعنی او رجه هت ماو شورج. لناو پرداهو چو ملاي ملا مصطفا. وتم کاکا نقل آوریا آه موسالد درد و در بدریم هربویه بود. جنانی کردستان نم نسن نه نسن. توش لای خود رام نگری. وبعد ذات مو أكاسي كردن صدام با تياري هلیکوپتر هات لحاج عمران دیسن يكتريان دقل بارزاني ديد اجودانکی سبح مرزان دي توا كا بچك سنعيكو بعسيكي اجودانی صدام بول وقتی خواهی لعیداره مبانی آم پیک و کارمندی قرار دادی بوینو، ایستاش بو بوا افساری استیاره، یک ترمان ناسیه و سبای که صدام رویشده و منش دگلی دا تیاره دا سوار بون. دگل صباح قسمانده کرد، بو و راو کلمیه جوا شناسو دوست بوین خوش و دواندمیو گوتي، لسر فرمایشتی برزانی اممانگی صد دینارد بازنشستی بودا برینوو، خواست هر کاریک دکه آزادی صباحش اگر ویسته یارم تید داده، اتירהت موجب ده حقوقی، بعض نشستگی، به شرط و شرطی ناسین برای او. یکیتی ادیبانی لبغدا دا دا کرد، لبقداد داد مزرعه کتکلاو، ادیبانی شرقی و پارتيو بیلین بو. لهالب جد نمینیانبو سراغ کاندید کرد. با انتخابات دبوب رسمیو لبرچاودری حکومت وزارتی روشن بیرد به سالنی خلد دیاری کرا، که لوی انتخابات بکره در بوای حزب خومند کچن وزیر و مدیر کلول و پیاوی گوره بن لو مجلس گرینگه در شیرکت بکن در من خس حزب قصه روجنامه خوابات قصه پیاوانی وکیلی برزانی بخون ریتوا برامزور به درخواه زورم خومندو کرد کسیان بر راستی آماده نبود. دو کس لالان حزب و هاتن بلامن سرنوشتی شد بعربی نیانتوانی درست کن. خویان دزیاوا مدیری راجنامو چند دگل و وزیر و پیاوجورکان گویان لسفرتی کوبا دعوت کردن. ودکای اولیان پی باشتر بود. لکاتی هالبجرد نشیوی ملیان لگیرشی و نیناو کمی مابو بیاتشر. بوی کمجر ل تاریخی بغدادا ل وقتی رئیخ من و دچرمان لسرکوچاوا. حکم کم بر لایت رئیه کانی جویه کرده و من بر لاو دز بکریه برای ورگرتن و تارکم خونده و که هیچ باسی چاکی باسم نکرد او انده تیژ تیج بو که زور کس لانوا بوده جیرم. باسی او کرد که او حقیق قراره ورگرین صد یکی خوینی او شهیدانش نیا که لرگه ازادی کردستان دراو و با همیدم که عقلانی عرب او شرط بر نصر و چیلی توشی برا و تارکم ده دقیقه یک طولی کشه هر خوشم خوم کرده وکیلی برزانی و حزبو لباتی اوان تبریک لکو بونوه کرد بزوربه رئی من بسروک حلب جیرم زور لو ادیبان هر اوانده کارتی اندامتیان ورگرد ایتر چاومان من پیانه کود نوا اوانده ان بز کن که اندامی یکیتی سر کودنن با جگو ریگو اساسی و پیداویستی یکیتی کودی نبار بوکو کردنوا لدولماندانی کردی بغدا خو من تیار کرد و دست بکار کرد زور من زحمت کشه تا امتیاز مجلیک من بناوی نو سری کرد ورگرد با چی زحمت من کاتباسی و تایبتی صدام خو یاته کردستان قولیدا به و مکتب سیاسی و سرانی شورش که هرچی ایو به اواتن گیرتان کوي منزور پترتان دادمی چی تندوی بلند تا پکی بین موزیاتریش کوبونوی زور کرا کچی لدولت بخوازین. لبیر من لیک کوبونوی دا بشدار کرام که خوانکارکانی شورش جگل ملا مصطفى هموین حاضر بون. بسی که رو منی و فرهنجی کرا که وا راجنامه من لبغدا به ازادی درد چه. من گوتم؟ براین کابرا برادره هرچی دانیو بلند ملتی کرد زور دورة فرهنگا، باتای باتیله خواندوارانی شیدا کمیان کردی از آنن بخوانن و بنوشن، بناغی بونو زندویتی هر ملتی کیش با فرهنگو گشکردنی ادبیاتو زمانکی آو بنده. رادیو دا مخن، جرآن کجیوتن با عربو بعض ادا، لست تعریفی اندکین تا پیوچاکن، ادبیاتی خوشمانی لسر بلودکینوا. صدام داله رادوی به بخرجی زوره و با لحولیر دکموه هرگه رادوی و لهولیر آمده کرا امشدچین لسر اویق سدکین او سا اوی خودان ازل کن دواب كرد کن که استانداری کرد لشاره کردکان دا بتوانی امتیاز مجلی با کردی و رواجنامی با کردی بدا دجی سیاست دولاتی باسی تیدن نسره خلق فیره کوردی بکن و بالزمان و عدبیاتی خویان دا شاره زبن دواب کن که هستن به نیوه رجنامه گوهار عربی ایمه بتوانین داوی امتیاز بکنین لبغداوشاران یعنی باش یک با دو باش زور لسر امخسانه رویشتم بلان پیم سیر بو که زورین تو گوتین قط او من بو وتم و تم بکن با اوان بلن نایکین وتیان تیان نا که هجر زور من که هیا که بوشت انی عزیز و خۆشەویست لێرە دابم شێوەیە هاتی نە کۆتایی بەشی هتاوس خوێندنەوەی کتێبی چشتی مچێوری هەژاری مکریانی تا بەشێکی تررو لە شوێکی تردا پێتان دەگەینەوە شوتان ئارام